هر روز برانم که کنم شب توبه، از جام و پیاله لبالب توبه، اکنون که رسید وقت گل ترکمده، در موسم گل ز توبه یا رب توبه. از درس علوم جمله بگریزی به، و در سر زلف دلور آویزی به، زن پیش که روزگار خونت ریزد تو خون سراحی به قده ریزی به. ای دل تو به اسرار معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی، اینجا به می و جام بهشتی میساز ساز، آنجا که بهشت است رسی یا نرسی. آنان که ز پیش رفتنده ساقی، در خاک غرور خفتنده ساقی، رو بادهخور و حقیقت از من بشنو، باد است هرانچه گفتنده ساقی.